چه رسی اصلاً فیغمه رو ندیده و در مسجد دمشق دیویس سال بعد از فیغمه داره نرمو میکنه به همان روایت این ها واقعی ساده شده یعنی اخبارگری یعنی دیگه در خوبش شد نیاز به یک جهاد پی داشت که و این بهگاهانی حقا کفه شد و تمام این با اخباری این رو که از طرف ادفران تا پیش میرن همه رو جمع کرد و اکلا معلوم نبود نهایت این اخباری به گزی هموندهی بشین اگه اون لا یهزو رو حتی لا حضر مافرد و لازاله فقط این شهری در قرآن العقل علیا و جهلت بیشیان. یعنی اصول قت معتبری نیست شریع علی خلافه. که تو کمی باشه، ولی با خلافش که باشه. این کار چیزی نیست. و کذا رو فرده حصول القطع من الشرعی کیفه ممکن حکم العقب به خلافی علاوه شهر منابایی نمیده از حضر قطعی در موارد قطعی تا آرز نداره و من من با فقه همان علا چون تلکیف شده مثلا این مذهب محدث بحرانی خیلی دیگه زهب در خواهیگری نیستیشون از طرف من مرو و مرو علل ذلك کجمله این مگر کویای قرری جدیدی نشد منته با آنها فرمود این اخبار خوبیه المعتصم بهرانی در مقدمات پداید بعداً باز ترتیب شد رسید به اعلامی ورثی و میشود اساس اخبار که جمع شد با جامع معبور و منقوله چون نیست که بگه اول کلن منظورم و اون چی که داریم همون مباردی همین از سرابادی داریم در مقدمات هدایه که مقدمات خوبیه نظام بود هدایه هم نتونه بخونه همون مقدمات رو بخونه کافیه در این اشتاف پیزنگهی ای پیدا کنه و مباریه این نوع اخباریگینی که در مقام تفسیر در در مقدمات هدایه ریس و نقل کلام هم دل متقدم یعنی جزائی فیلازت مقام باز تحسنه او الا یه خرقی با محدث جزائی داره با اونی و این که فطری و حکمه به متابقه شهر و متابقه شهر الهو مقام؟ نماخالل عقل به شیء من الاحکام قضيه من ابواب تقييم انا عقلی که اینا دارن نرو میکنند نه نه عقل معارض با کتاب سنت. نه عقل واقع در سلسله احکام یا عقل واقع در سلسله معبودات احکام عقل در عرض کتاب و سنت و اینا قایم که ما مقدمه واجبه رو یعنی بگیم وجود داره یا نداره امر به شی مختص این اهل ضدش هر چیه هر آیا حجمی رو ثابت می‌کنه یا ثابت نمی‌کنه استصحاب عدم ازلی چیزی رو میاره یا نه اینها رو می‌خوان تعریف کنن میان میگن نه نیست به که اختلاف اون با بومس و خصوصا در مسائل کلامی بناسوی دای دای ها الاستماعه ان المحسوم علیه سلام فقط کتا بسنده فیلی کتا بسنده محسوس خود از این همید منطقه ها به و هم که اخبارین هنم نیستن میگن هنم سر از عبد درست در قصور الابل المزدور این اطلاع علیه الله. هم قاصل از اینکه که واصل بشه دو مستقب و به واقعی اشیاء یا به مساله و مقاصد واقعی اشیاء هم نمیتونه برسی بعد در ادامه اومدیم تعارضات و شرع و, شر و مدرکت که گدومش مقدم میشه گدومی مقدم نمیشه اینا خیلی مفید نیست شما معمین رو خوندید آخرین هرکی که از این دسمت میخواییم بخونیم نظریه به خود مسمده بنددی یخدی النظر بفاقند اکثر اهل نظر انمو کند ما حسل القطع من دلیل حقلی فلا یدوز یعنی فلا یوم جن ان آرزه و دلیل و نقلی يعنيان اگر 하는 حکمه درکی اصلی هر چیزی میشه معالزه نقلی براش پیدا نمیشه و اگر یه موجه پیدا بشه باید به تعبیل بده نقل که به تعبیل میبره و این وجه در تقليون ظاهره از معالزه معل اق فلا تام من دلیل النعم ان لم يمكن تر النعم بنابراین که قائل به تره نقل نه تره اگر چیزی باشه که مخالف باشه تا این حد شخصاری با اخبار این طب و کلما حصل از قطع من دلیل نبلی مثل قطع حاصل از اجماع جمعی شرایع علا حدوث عالم به نحو حدوث زمانی الو یه دو زنیه سلام خلافیم از دلیل ابری. از نظر سوبری میگه یه همه شرایط بایش شدن بر بدو زمانی آلا. دلیل کاتی بر خلافش با هم مثل صورت برهانن کانش مقابلت بدیه. اگر هم در بیاد یک شبه یه سال میشه در مقابل بدیهی های لیکن در آیت آیتهاد تا فلعقل بدیهی و فتفی در این موارد بگه موارد نقلی برش پیدا نمیشه یه روایه بگه بگه, بگه که الوارد و فلسنه اینی که عقل داره میگه من قابل ندارم الباهی و سباسه چیزی پیدا نمیشه فا داننا ذلك المركب و هو شده و که مشکل استقراییه فاسمودی تا نتیجه بگیره که مرکب داره اعلی به صورت قرانه قائم بشه جنب مرکب نذانه عن محاکات نظر در الزامه قرهان قرهان داره میگه دیگه منطقیه، عقلیه خب رو داره میگه جن محاکم نذاری یه کبرایی همین قرهان کرده برای اون میگه به نشینا تونست بر مخالفه ضروریات شرعی از اذن شی قرهانی اقامه بکنه اون شبهه است برهان اگر نقل ما اومد گفت که قاعدو نصف سلاسه یعنی هم مندوده معلوم میشین اختلافشون با اون اقل قیاسی عراسکوری صدرائیه نه اقلی که فقها اومدن بایش شدمه که اقلی که در عرض کتا بسنده مقدمه بازم امسال این ها شیخ انسالی با مخارف خلاسفت نمو هم بخالف هم مخارفت هاش نقل اونطور دارم بروس میدن و خالفن فا این قد لعل نظرها اولای ریزاله ما استفاد من الاخبار مثل قولهم علیه السلام حرامون علیکم انتقود و به ما لم تسمعوه مننا چی از ما شاید بگن میگن اقلیات خودتون درک کردید چیزی نیست که از ما شنیده باشید برای چی دارید نرم کنید نظام معاد مثالی رو نرم نکنه چون از ما نشنیدید و لو ان رجل قام بلیده و سام نهاره و حج دهره و تصدق ماله و لم یعرض ولي الله و اکون اعماله و یکون اعماله و. یعنی حتی اگر او نا اعماله بدون دلالت ولی ولی او ما کاننده او الله سلام همین خیرات هم بکنه بدون بداعت حدیث قابلان لاقوله علیه السلام من باطراصفه اینطور نیستن فلسفه مخالف اینطوری نیستن ملا سردار خدا بگید 500 سال حوزه ها زحمت بکشن یک قدیس اینطوری به وجود بیاد مخالف نیستن منطقه اون تا اون چیزی که ما داریم نرم می‌کنیم برای که عمرها طلب نشه و سید جمال دین از جمال الدین از حلواسی دیگه آخه ماده و صورت چی دارید بحث میکنید خود چیه منچیه همینا دارین یارو اینها بزنن از شریعت بگیرن تبع شریعت باشه اینها که مفتوش نیست با چند تا عالم داریم مثل شیخ و رئیس که مشکلات علمیش رو به با نماز اینا ای در قطعی سودنشون نیست مخالفتی هم نداریم و کسی هم مخالفین ها نیست منطقه بحث چیز دیگه است بحث اینه که ما سیرام فتوحات بخونیم اینهای که انسان وقتی مسلط به مبادی علوم باشه باشه برزفه با اسفار و خصوص و مصبابل و همه این رو دو سال انسان میتونه دوره کنه لازم نیست عمرت میستهاله کنی 340 سال درو این چیزهایی که میشه تو دو سال انسان اینا رو بمونه وقتی نفس ول برام میمونه صحیفه سجادیه میمونه وقتی اینطور هم نیست که بگیم مگه اونها رو نخونیم اینها تفسیر نمیشه ارتباطی نداره ماده و صورت در فلسفه چرا که به صحیفه سجادیه داره چرا که به دعای قمی داره ارتباط نداره اینا خودش منطق خودش رو داره یعنی فهم روایات منطق خودش رو داره منطق عرستونی مال روایات نیست حالا گیرم که بعضی از عاظم با سغرا و کبرا بعضی از آیات رو یا بعضی از عدیه رو بتونن تبریه بشنن به ولی اون منطق منطق لسان روایات نیست روایات منطق خودش رو داره بنابراین اینکه کنه تضاهم معارضی و محاکمه نیست ما بیان بگیرم نه این ضد فلسفه و همثال این ها اتفاقا اگه ما این حرف رو نزنیم که دوستی دشمن میاد میدنه اون موقع با قرز میگه بهت میشه اگه ما از دانشگاه میاد میگن موقع قرض آلوده به مرز میشه من به قاطع که به ابن و لاسد را دارم و حتی اینها را از خیلی از فوقه ها بالاتر می دونم و سالهای گذشته چندین میکارم گفتم که جزء کرامات ملاسد راست 20 سال سکوت که از عهده هیچ احدی ساخته نیست یعنی شما الان تو حوزه های ما یک شرح فارسی بخونید سرطان تدریس می اصلا حتما باید تدریس کنیم این علم گمراه شهرهای فارسی گرفته شد اونها در منبری ها آوردن به تدریس متون فقری و اینم ازتباه ولی ملاسده و تمام فضایدش فضیلت ها رو من براش نمیگم. اونه شیخ حباس قومی براش داره میگیره شیخ حباس قومی اخباری مطلقه ولی اخباری که مثل امین از سرابادی نیست ولی خیلی منصفه در کتاب الفواعد و شون در یک مسافرت به مشهد برای اینکه که خستگیش در بده غم کم بشه در تونجا فواهد نوشته که شاید جامعه ترین کتاب ترجمه علمای آیشی است در اونجا در رابط کام الله چی نوشته بنابراین انصاف چیز خوبیه اون واقعا منصفانه نوشته به خلاف صاحب روزاد خانساقی که چیزهای خوبی ننوشته ولی صاحب فواهد رزنگی خیلی با انصاف نمیشته ما میگه عمرها در ماده و صورت طلب نشه منطق عرصویی به درد فلسفه عرصتوری میخوره به درد روایات نمیخوره اینو هر احدی هم بگه من ایش موقع نمیکنم نمی کنم که بگه منطقه روایات همون منطقه عرصوییه. این حرفا نیست اعاظم بزرگان معاصرین هم بگه من یک نفر قبول نمیکنم و دردن نمیکنم. هر کسی برای خودش یه راهی به انتخاب میکنه اون منطقه عرزتویی مال از عرزتوییه میخواد خوب باشی میخواد بد باشی ولی روایات منطقه خودش رو داره و حالا مشکل از خود ما هست که برای روایاتون منطقه خوبی نداریم یه منتهی برای فهم روایات نداریم حالا که ها قاها شدن به یه اصول همون منطقه فهم روایاته منطقه اصولم متورم شده شهید سدز چقدر به این بحث های اصولی آب بسته چیکار کار میخواسته بکنه این بحوس یعن همش واقعا باید باشه یا شیش جلدش اضافی به مباحث اصولی ما این همه بیایم عمر طلف کنیم نه فلسفه است نه اصول پاش یکیش بود لاقل که فلسفه باش اده مییه فلسفه است اصول باشه میگه ای اصولی نه هیچ کدومه اصول در حد معالم اصول بیشتر از معالم مزده یعنی عمر شما رو تباه میکنه بنابرای اگه بنابرای از منطق فهم روایات باشه و اصول منطق فهم روایات باشه اصول بکنید ولی در حد معالم حالا مشکل ما که معالم رو ازمشت کردیم و یا نه این مباحث خیلی است و چی هست و چی هست نه این حرفا نیست عمرها دیگه این طوری نیش هی به مباحث اصولی کشف بدیم طول بدیم و از همه چیز میمونیم پس هر بحثی منطق خودش رو داره منطق عرستوی مال فلسفه عرستویه و یقینا بدونه اصلا استحصال نداره و نمیشه به نتیجه رسید کمان که, که حکمت بو سینا بدون اون منطق اصلا پیش نمیده اینا متمایز کنید، هر کار اینا متمایز کنن. ما اگه ایراد بگیریم، ایراد دوسته، برمحضن، هیچش اشکال نداره. مثل ایرادی که پدر و مادر از بچهش بگیره. ولی ایرادی که بخواد دیگران بگیرن، اونا دشمنن، اونها غرض دارن، اونا با آخوند و روحانیت و امامه مخالفت دارن. اونها نمیخوان اینا باشن. الان خیلی از کتابای فرزین بده این دوستان کتاب دارن می‌کوشن، اینا دانشگاهی‌ها نوشتن. خدا میدونه عزمش نگنه. ولی اون کتاب هایی که آخند حوزبی نوشته واقعا هضمش کرده یعنی نوعی که مؤمنه و کتاب فلسفی نوشته هزمش کرده ولی اونه که دکترهای دانشگاه های ایران رو داره یا قرم رو داره اونها نتونستن هضمش کنند برید مطالعه کنید الان این مرحوم به رضا صدر هم در کتاب از فلسفت الیا که یک دوره کامل فلسفه است. و هم در سحائف و من الفلسفه که شرح بر هست این چقدر هضمش کرده ولی همین مطالب رو دیگران حضمش نکردن از اونم که هضم نمی کنن میان فقط ایراد میگیرن و بحث میشه ببین ماهاش ایراد بگیریم ایراد سازنده ایران بینیه که ما مقرض نیستیم اون لا سردار یه ده, ده کسی مناقشه درش نداره هر وقتی که گفتیم از خودشون گفتیم بر خودشون از خودمون چیزی نگفتن با اون چیزهایی که من از اینها یاد کردم، کردم شب شماردم که دو 98 صفحه است از این چیزهایی که من گفتم من سه صفحه گفتم بهشون و در طول این دورانی که من با فلسفه بودم و یه زمانم تدریسش کردم درسشم میرفتم و با تشلیگی مطلق درسش میرفتم به حاضر بهترین استاد رو داشتم و شیفته فلسفه بودم با این همه 98 صفحه من از این مطالب دارم و تو این دو روز من سر رو گفتم همه شما از خودشونه اینطور نیست که من نگفتم اینا کتاباشون دا ظلمات صاحب تمهید و گفته ابن ترکه داره بیگه حتما آقای مراجعه کنم به همه شادرست دادم مراجعه کنید ولی اینها در این بری که فلسفه رو نخونید اونهایی که فلسفه نمیخونن ناقص و از عواظه هم باشن فردا به درد نمیخوره فلسفه رو باید بخونی منتها با سیر خودش بعد از اینکه که کفایه رو تمام کردی شما با اون ذهنیت بعد از کفایه تو دو سال تمام این عرصات فلسفه رو بتونید طی کنید هیچ مشکلی هم نده ولی اگه بخواد قبل از اون موقع باشه خب مشکل میشه کسی اصلا نمیتونه وجود ذهنیت تشکیک که در وجود یعنی که در ماهیت یعنی چیه. یعنی قابل هضم نیست. الان مطالب اصول رو نمیتونیم هضمش کنیم. میتونیم اونها رو هضمش کنیم. چیزی که هزار سال روش کار شده و ریاضت‌ها کشیدن و بهترین اساطیری رو داشتن. اگه اصالت و ماهی قابل هضم بود از اول ملاسر و بعدن بر نمیرسید از این نظریه. بنابراین سخته. خیلی سخته. و فلسفه یکی از تأصفاتی که برای جنان آرز شدینه که همه دارن بخونن فلسفه مال همه نیست فلسفه ده نفر از هزار نفر فلسفه رو عمومی کردن یعنی یک مرضی رو سرایت دادن به همه ولی اگه ده نفر از هزار نفر بخونه خیلی کنون یقینا اون ده نفر استعدادش رو داره میشه ملا و مفید میشه ملاست همه کتاب هاش طرف شهر اصولی پاپیش هم می دارن با اون این روایت آتا می, می مفید میشه اگر اهلش بخونه ولی اگه همه بخونن فایده نمی اما که فرقصورم هم می مگر همه میتونن توانم فرقصور بخونم اونکه ناس های عمومی رساید مکاسب و کفایی و درست خواهی برای همه بعد اونا یکی دو دعات دارن بیست ساله سی سال تبدیل میکنم بگیشیم بیرم آبا بیادیم تان شفایه بدید که شهریتون قطع نشه آبا فقه وزوگی همه نمیخوره اینا سا و سریان یاد بدید آده و یاد بدید گلستان بوستان اینا رو یاد بدید آبا چیه فقه وزوگی همه همه جا رو گرفته هر کسی یه زده پول درستش اومده مؤسسه زده محسسه ایم که خصوص تغسسی با 150 اطمان عبد مبعض درستی میکنن. با 200 اطمان عبد مبعض درستی کننن و همیگن آقا موضوع عبد الان آن در کم کنه چرا این ها عبدن دیگه و 200 تومان میدن از صبح تا شب اسیرشو می کنن یا لاغت بدار به زن برسن خدا رو می دیگه ظلم شاهده هم نداره چون پول داریم این طرفیه دیگه. روزی چهار ساعت درست و بعدا هم بشین همینجا مطالب کن همینجا بیا ولی یک روز نیای، ساعتهای غیبت به پنج ساعت برسه پنجاز کم میشه. این روشه اگه این روشه دیگه جهنم فعلا متجلی شده لازم نیست بعدا بریم جهنم الان خودشه حوضه شده جهنم پس فیصلی همه لحنمه نیست رو میخوایش خوب باشن گلستان و گوستان رو یاد بگید چه مولوی بخونن حافظ بخونن اینا بهتره اینا بگیر میخوان منبری بش اینا رو بخونن آقا ترتب به چه درد منبری میکنه به درد فقه نمیخوره خدا میدونه اجتماع امرو نه به درد فقها هم نمیخوره آقا اینا الان فرصت نیست رو بگم بخوان در مورد فلت ها،, ها حرف بزنم باید هزاران ساعت حرف بزنم عمومی نباید بشه اینا متخصص میخواد تخصصی به این معنی که طرف آزاد باشه روز از یک ساعت بده درست اونم پیش اهلش نباشه. شهرهای فارسی بخوان تدریس کنن همه جا عمومی شده همه شدن استاد، همه از شهری سناد دادن و جا تدریس دردشت حالا این قسمت از کلمات مصنفم بودیم بعد بقیهش آقاییم چون فرصت نیست من اینا رو همه را بخونم و نهایت حرفی که مصنف داره صفحه 64 از این کتاب ها شده به اینکه خوزه در مطالب عقلی نشه خوزه در مطالب عقلی نشه به خاطر اینکه چرا؟ نه اینکه حرمت تعقودی داره اشکار نداره هر کتابی رو بخونه به خاطر این که صلاحیت نیست اهلیت نیست شخصی که وارد خوندن فتوحات بشه بدون مقدماتش بدون اینکه صاحب نظر باشه مجتهد باشه اسلام شناس باشه خب این گمراه میشه اهلیت نیست آدمی که نکنید ولی اگه اهلش باشه چرا میرزا گمراه نشود ملا خودش گمراه نشود ابن سینا گمراه نشود و گمراه هم نکردن. شیخ و رئیس هنوز هم شیخ و رئیسه یعنی هنوز فکر ما به آفاقه فکر شیخ و رئیس نمیرسه هنوزم هم که هنوزه حتی خود ملاسد را اسم کتابش تو از خود شیخ و رئیس الهام گرفت چون حکمت متعالیه در شفا اومده قائل شده به این که کسی نمیفهمه مگر اینکه محو در حکمت متعالیه قرآنی باشه حتا اسمیشم از اون گرفتن لذا همه جیرهخار شیخ ولرئیسن افتخار منتها همه صلاحیت ندارن همه اراده ندارن شما خیال میکونه همه اراده دارن اراده وقتی نباشه انسان با باید جهنمی بشه اراده نیست وله کسی اراده داشته باشه بخونه خسته نشه خستگی رو خسته کنه چه اشکالی داره ولی این طلبهها خسته میشن دو ماه سه ماه خسته میشه بیاد بره درس بشینه نعوارهی میزنه، پاشم دراز میکنه و تو خونه سیدی سیدی گوش کنه. بابا به درد نمیخوره، علم رو خدا افاظه میکنه. اگه میخوای خدا به علم فاز کنه باید بری استاد، ولی استاد بی سواد باشه. برو همین دفعه آمدت به شما علم میدن بابا سیدی که نمیشه. بگی نه نم بابا من سیدی خوبی دارم گوش میدم. حکایات خوبی داره میگه. به درد نمیخوره. اون استادی که هیچ نکته نمیگه، بهتر از اون سیدی امام زمانه. برید در محظر درس بشینی روی بال ملائکه بهت علم بدن بلد اگه اینا رعایت نکنی نمیشه و شیخ رئیس اینا رو رعایت میکرده میگه من کتاب مابره طبیعه قبل از خودم رو چههت بار خوندم عباراتش رو حفظ کردم و نفهمیدم بعدا ترجمه بیرونی رو دیدم کندم فهمیدم ایچه میکنم بکن. ولی این تلاش و این اراده رو این از نو ماها نداریم وقتی نداریم باید بمونیم عبد دیدیم حالا ایشون شنگاه شده این, این خوض در مطالب عقلیه نشه و خاطر فکر فقه ما به هم میریزه وقت اشهر نهان و فی اول مسئله و عدم جواز خوض في الاحکام دینیه في المطالب العقلیه یعنی یقینا اصفار به درد فقه ما نمیخوره چیستن آسومی نداره نظر میخواهی اگه فقیه بشه اونو رو نخون اینا مخالف هم مخالفتشون هم مخالفت منفی به خاطر این نخونده مخالفه. یه موقع ایسا میخونه مخالف میشه مثل بعضی از محاصلین یا درگذشتگان خونده مخالفم ولی بعضی نخونده مخالفم. و این خیلی نکته منفی حساب میشه نخونده ایسا مخالف باشه بلستانت به خوبی تحصیل مناطل و انتقال منهاج علو طریق ده مثلا میان میگن آقا ارش چرا اینطوری تقسیم کردید اینا رو کی دارن شبه میکنن همینا که فلسفه رو ناجور خوندن خیلی شاگرد شاید متعلی بودن ولی عزم نکردن الان دارن شبه ایجاد میکنن میگه ار چرا اینطوری تقسیم شده پیه چرا اینطوریه اساس چرا باید اینطوری باشه و اصلا قساس برای چیه برای چی دارید قساس و بی نه همه چیزی را سوال میبرن و اینا میگن نخونید به خاطر این چیز است. ولی من علم شخصی شاگرد متحری باشه از سفر نفرنه و او جامع زالیک در خوز در مثال به عقلیت نظریت را که ما یا به اصول دی دیگه گه خوز در مطالب به نظریه که اختصاص به مطالب حقائل و اعتقادات داره اون دیگه اوجب از قبلیه عقلیات در فقراه نداره در اعتقادیات به طریق اونا چرا فینهو تعریزون للحلاک دائم و العذاب الخاله من آسات میکنم کشت دیگه میگه چرا اینطوری تفسیر میشه دختر واقعا چه فرق داره هر دو رو خدا خریده خب خدا خودش میگه فرق داره شما میخوای بگه فرق نداره مناطاتی که اش میکنن اینطور میگه ربا رو میاد میگه استثماری اشکال نداره خب منات که کرد میگه مناتش ظلمی جای که ظلم نیست اشغال نداره ولی این فقها مثل شیخ این چیزا میترسن میگه نباید باشه ما مناطات احکام تعبدیات میتونیم تغییر بدیم ربا مطلقا حرام یک همش شاید بیش از بیست تا سی تا روایت داره چه تهدیدهایی براش واقع شد خوب این نمیشه ترخیصش کرد یا یعنی بگیم آما زر در این موارد نیستون سود داره میگیره سود بگیره و سود رو از کافر حربی بگیریم فایده ای نداره اینها یا عرض چرا اینطوری دارن تقسیم میکنن دیگر رو چرا اینطوری تقسیم کردن قصاص چرا باید باشه ما نمیتونیم انسان را رو بکشه. خود اونهایی که قرب زدن دارن یعنی رو میزنن در این کتاب جلال و احمد بخونی قرب زده اونا رفتن تو اروپا میگن اونا خودشون به ساس نمیپنن جون خودشون اونا هزار هزار میکشن بیگناه میکشن در حدی اینا میکشن که اسرائیل رو به وجود آوردن که خیلی مدرن باشه کشتنهای مدرن باشه اونها قصاص ندارن ولی ماها که کم خوندیم نفهمیدیم میاد واقعا قصاص نباید باشی قصاص نباشی که مردم دیگه امنیت ندارن قاتل رو همون درجه باید بکشین نه سه سال طول بدی تا یک شبهی باشه و بیا هوا بخوره و خراب بشه و بیان بگن و قسامه با میدن. قاتل رو درجه باید بکشی حرف نداره ترس نداره اگه احکام دین این اینه باید مو به مو اجرا بشه بعد از چهار هر شهر یکی یعنی یه نمکتی بذارن این زنهای بیهجاب و شلاق بزنن اوضا اینطور نمیشه همش مماشات میکنیم یا احترام این همین گمراهی و بدبختی از کجا هم میاد از احفا رو باید رعایت کرد و اجرا کرد و ربکی هم به چیزهای دیگه نداره پس نمیشه تنظر کرد مان مناطاته آقا این خیلی است. بیان یعنی بگیم چرا مردها هی ندارند زنها دارد وقت در کشورهای این طوری میبینیم مرد چقدر پوشیده زن لخت خب برعکسش کن زن ببوشه مرد لخت باشه ولی میبینیم مرد چقدر پوشیده زنها لخت یکی نیز از خود اونها بپرسه پس مناطات حکام ما اما اون نمیرسه و اعتقادیات رو هم با این چیزا نمیتونیم اثبات کنیم و شیخ و رئیس در رابطه با خلافت همیر و بر برموده ول استخلاف منم نسه اصل دیگه من خلافت بلافصل رو یا اصل خلافت رو با عرق نرسیدم ولی به روایات مراجعه میکنیم اون اصله به بنابراین خیلی از اصول اعتقادی ما بهش نمیرسیم. خلافت بلافصل یعنی چی ما نمیدونیم چرا باید اینطور باشه؟ و چون خودمون شیعه هستیم عدلش رو قبول میکنیم اونایی که نیستن خب قبول نمی کنن. شیخ خبرقیش هم روا به این که روایات باید بگیر و قدوشیر الازاله این در نه یعنی خوصیم از عدت قضا و قدر قضا و قدر رو در نهش و داره نکنید ما سر در نمیاریم قضا و قدر چیه؟ اگر بنابراین اینها رو ما که دیگه از به پیغنبر نداشتیم و یقینا ابن سینا و ملاصدرا و بزرگان فلاسفه از فلاسفه خوب مثل میل فندرسی مثل میل اینها که جز خوبان این قومن اینها دنبال این, این چیزا نیستن برخلاف اسلام چیزی بگن و سریحا ملاصدرا در جلد اول اسفار خودش گفته که به خدا پناه میبرم از اینکه چیزی به مخالف دین خودم باشه. پس اینا آقای هضمش کنن ما مخالف فلسفه نیستیم اتفاقا در این حوزه قوم کسی تر از من به فلسفه پیدا می‌کنه. منته با راهش از راهش باید باشه با کتابهایی که هست با استادی که ور باشه باشه. از نزاهل من بعض اتکل اخبار عن الوجه فی نهی یعنی لا خیر و حالا چرا روایت مدی گفت نکنید به خاطر که اینها میان بعضی از موارد مباحثاتی میذارن با اینها و اینها محالت کافی رو ندارن موجب روسیاهی اسلام میشه لذا گفته وارد نشید بعضی ها وارد نشن خیلی وارد نشن ولی اونهایی که دارن شاید اشکال نداشته باشه لیکن نظاه من بعض تلکل اخبار مانعه مانعه از خوض در لوای اغریات اندوزهت به نهی اندوزهت یعنی خوض در مطالب اقلیه نظریه در اصول اعتقادات ادم و اطمینان به مهارت شخص المنهیی به مجادله و یسیره مفهمن این در مخاربه وقتیان اینو روسیه هش کنم زبالش کنن مندازن کنن مندازنشان. یعنی بدت نبود نه تسلط نداری مباعثه نکن و یک شخصی در 35 سالگی مثل علام محمد تغییر جفری با فلاسفه شرم و غرب از طبیعیات گرفته تا فلکیات، فقه، حقوق همه چیز ازش پرسیدن همه روسیهاش کرد در اون تکابوی اندیشه ها بخونید و کتاب های دیگه اگه اونطور باشه مشکلی ندارید خدا میدونه میرزه تمام حوضه ها این همه مخارجی که داره هزار برابرش خرج بشه یک علامه مثل باز میان ولی بلیده بیان دیگه به خاطر که نمیخوان طلبانه نمیخوان اونطوری باشن ماها با اون همه علمیت این همه توازو و فروتنی که خودش رو اصلا به حساب نیاره اصلا پیدا نمیشه بعضی از موارد تو, سخنران، تو سخنرانی هایی که داشت از فارسی میزد به ترکی و خودش متوجه نمید به خاطر که خدا داره حرف میزنه دیگه چی میدونه بعد بهش نفتن اینا فارس همه نشستن. شما کانال دوم زدید بر میگردون یعنی اینقدر ممحل در این مطلب رو باید بگی شب فوت مرحوم های گلپایگانی مراسم گرفته بودن شب اولش هم بود یا شب دومش دو دقیقا نمیدونم خب همه برامون بعد از نماز مغرب شا بیان من نماز حرم بودم دیدم اللامه رفت تو مسجد اعظم یه قرآن مرزاش نکشیم، کسی نیومد. مسجد ازم خالی خالی بود. بعد یه قرآن مرزاش نکشیم، آداب خون رو بعدا دیدم داره میره طرف میدان آستانه. با بیشتر شدن یه رنو داره، با رنو اومد گفت استادم میده، اومدم یه فاتحه براش بخونم و برام. یعنی احدی ندیدیشون اومد رفت. حالا بعضی از موارد ما به یه جایی میرسیم که حتما وارد مسجد شدیم، ما اسممون رو بدیم اونجا بگن. بگم فلانی بگم اومد که درست بشه، وگرنه نمیشه. بنابراین به این مرحله رسیدم. خیلی آب میبره خیلی مایه میخواد. اگر همه حوزه ها جمع بشه و مثل ایشون به وجود بیاد که فیلسوف شهیر شرب و اسلامه اشکال نداره فلسفه اینطوری هیچ معنی نداره فلسفه ای که بعضی از فلاسفه ما میگن خیلی هم بود و اینه فلسفه امومی اینا رو فرق بزن و یو جب ذالک المطالب الحقه فی نظر اهل الخنا و الا خود علامه هلی بزرگترین فلسف و کناهای فلسفی هم زیاد داره الاسرار و خبیگر رو بخونید چه فرق و اصفار داره اینا خودشون فلسف هم فقی هم هستن بنابراین آقایون نگن فلسفه بده فلسفه باید خونده بشه منطقه به ها و شروطها اولی شرطش تحضیب نفسه بعدش هم استاد خوب بعد استعداد کافی استعداد نباشه فایده نداره یا آقای بود یه زمان درس آقای وحید همون جلو میشست گفتم شما چند تا درست میری توی درست آقای هم تو از میومد گفت که من چهارده سال, سال سال هفتاد و نه این سوار من ازش پرسیدم گفتی چهارده سال همین این میام همون دست دارم میرم گفتم حالا تدریس نمیذاری گفت نه حال هنوز هم داره میره چه پایده برایش متدفده میشه من هم نمیداره نمیتونه تبدیس کنه نمیتونه منبر بده فقط نمیتونه عادتشه بعض خوب داره و میره درش بکیه میاد. اگه اینطور باشه که ازتعداد نباشه پایه‌ای نداره به انسان با پنج سال فلسفه خوندن میشه راه فلسفه رو بگیره بزرگترین که صوفم باشه الان اگه ها این بحث تمام شد بقیه مطالبی که نخوندین خودتون بخونین این ها دیگه بشه میشه اگه من بخوام اینا رو ترجمه کنم. و اینارم رو بنا نبود بخونم و خواستم آخرش این حرف شیخ رو ترجمه کرده باشم که اینشون شده به حرمت ارشادی خوز در فسا مباحث تلسفی حرمت ارشادی گرفته یعنی گفته چون بلد نیستن وارد و کسی مهارت رو داره مثل را داره خیلی هم خوبه الان اصفار رو خیلی هم شد وقت نداشته باشه هم بخونم ولی هلی حکمت اول عرشیدیه رو بخونم بارم ملاسدرا خلاصه اصفاره و از بعضی از یه از اصفارم میکنه. توی یک سالم تمام میشه تمام مطالب حکمت مطالعه هم از سال مطلب تنبیه ثبوم قدشته حرفی از سنت معاصرین ان نقص القطع لعتبارمین لعت قطع قطع اعتبار نداره و مشهور از در زبان معاصرین شیخنساری و لعل الاسف لفیزاله معاصر رهبهی کاش پلغتا و اساس و مبدع این حرف از کجا نشعت گرفته از کاش پلغتا کاش فلغتا در کتاب کش پلغتا که بهترین کتاب های فقهی حساب و اینا رو طلبه میتونی تونی چهار روزی که تعدیده پنی روزی که تعدیده پیش میاد اون در این چهار جده بخونم بعد الهونی من نکستی میدشتن من یه استادی داشتم یه بار در تهران دیدمش ازش پرسیدم شما چقدر با تالیم میکنی یک موردشو به من گفت محیر بغول بود که در یک سال و نیو شیش هزار کتاب کندم و واقعیت هم داره یعنی یقین دارم میتوند تو یک سال و نیم هزار تا انسان کتاب بخونه ما نگیم شیش هزار تا شما شست ها بخونه دوتا تا رو برمیدار بعد الان به هم نکسی در به شکی ایشون فرموده کسی رو شک نعتباره به بعد از اینکه این حرفو زده و کذا من خرج اندعا در تقیقت ای او پیزنده ای اونا که غیرمطارف هم آنتلشو نمیگیره آدم های غیرمطارفی هم مثل وستاسی آنتلش بد شده هی hey, میگه من وضوع باطله غسلم باطله یکی بود زنش میگوست که این چهار ساعت تو حمام سنگ پا میکشه فقط تا میخواد یه کنه و مشکلی که ایجاد شده در یک سال اخیر این مباشرت مطلبه کنار گذاشته یعنی سفاحت تا این حد لعب شیطان با انسان تا این حده در از قطعش قط اشتلاقت قط هم خوب همین. که قط اقیده متعارف بدون فیل و یه روگو اعتبار اما اعتبار قطع و زن در حق من خرجن العاده اعتبار نداره خب حالا قطع قطعه داره یا نداره اصلا این بحث رو مثلا یا مثلا نکنیم بعضی از مشهورینه که حقیقت قطع ذاتی و ذاتی احکام داره ذاتی لا دا یلغ ذاتی لا یتخلف ولایت خلل اینا غیر قابل انکاره اگر چیزی ذاتی باشه مثل حدیت برای قلد که اما علیه مشهور بنابراین اونها هر ندارن بیان از قطع قطا و قطع متجری بحث کنن اونهای که میگن ذاتی داید تخبرد هر قطعی حدیت داره لذا مشهور و امثال مرحوم خویی نباید بحث کنن اونها ذاتی میدونن و شهیست هم نباید بحث کنه چون اونم ذاتی میدونه منطقه های زاتیات بعضی ها عدلشون مستنده به قاعده حسن قبعه بعضی ها به حق مولویت همسال این هاست بلا ها اونهایی به قائل به ذاتیت حجیت بلا اونها نباید برسانند ولی اونهایش به قاعده به اعتباریت هست و شاخص ترینش محقق اسفحانی عبد فعال و مرموم انباقی تواند باید این به اعتباریت اینا هم که قاعده به اعتباریتن یا میتونن بحث کنم یا آیا قطع تا خوشیت داره یا نداره قطع متجربی خوشیت داره یا نداره در اون بحث ما یک مطلبی رو طرح کردیم قبل از طرح اون مطلب یک مقدمین رو ذکر کنم که قطع تقسیماتی داره تقسیم اولی بر که تقسیم میشه به موضوعی و طریقی و این تقسیم از تقسیم اعتباری ده. به در هر موضوعیت داره و هر قطعی تریبیت تا زادن ولی به یک اعتباری اومدن تقسیم کردن قطع رو به موضوعی و تریبی و اساسش هم قطع موضوعی یعنی از موارد قطع در لسان ادله اخص میشه یا دهاز میشه از موارد اخص نمیشه ولی دهاز میشه اینه قطع عطب خمریتی و یه رو معلی این میگن قطع موضوعی اضافه تن طب خمرئیتی شیء و یهن و که شربو اینطور اینا میگن قطع موضوعی بعضی از مواردم لحاظ نمیشه انسان تشخیص میده که یقینا این نوع مترتب بر قطع در مقابلش قطع تاریخی هر بحثی که انسان پیدا میکنه به میشن چه به وضعیات چه به به حقوق به مسئولیت ها به هر چیزی که انسان قطر میدامونه قطر طریقی هم این یک تقسیم تقسیم دوم اینه که تقسیم میشه به قطع موضوعی و ذاتی و این موضوعی قیل از اون موضوعی اون موضوعی کتاب در مقابل طریقی هم. این موضوعی در مقابل ذاتی هم. هر قطعی که نشأت بگیره از ذات مکلم و ذات انسان به خاطر افکارش به خاطر عقاعدش به خاطر نمیرم زندگیش به خاطر اجتماعش قطعی که ذاتی باشه به این معنا که از ذات و نفس انسان نشأت میگیره اینه میگم قطع ذاتی ولی قطع موضوعی که در مقابلش به این معنی که از اسباب متعارفه اقلائی نشأت میگی یه موقع شما قطع از راه جفر و سرلاو و خواب میگن قطع ذاتی برای خودتون چیه خواب دیدی که این کتاب رو باید بخونی یا خواب دیدی باید این کتاب رو بریمیسی این قطع ذاتیه ولی بعضی از موارد قطع موضوعیه قطع موضوعی یعنی قطعی که بر طبق قطعه خواب متعارفهیه و قناعیه باشه مثلی که شما از راه کتاب سنت به یک قطعی برسیم اینه بگم در فره موضوعی. موضوعی یعنی وضع شده بر طبق مبردرات و قلائیه و مناشه و قلائیه و اسباب متعارفه یعنی برای هر کسی این قطع حاصل میشه ولی اون قطعزاگی فقط برای خودش شخص حاصل میشه اون که خواب دیده براش حاصل میشه و اون خوابش رو برا من نقل کنه مثل عواموناس دیدی نماز نمیخونن شرابم بعد خواب میبینن زن میزنن میخوان تعبیر خوابش رو بدونن به خاطر نهایت سفاهتشونه تا بیداری چیه که خواب چی باشه و اینو من به خیلی از مراکز گفتم که تعبیر خواب نکنید تعبیر خواب از ادوم دوم است و اگر کسی متصدی بشه بشم اون اینها چیه اینا روزشون چیه که خوابشون چی باشه یعنی که نماز نمیخونن خمس نمیدن زکات نمیدن هزار معاصی رو انجام میدن بعد خوابم میبینن خواب امام می می زمان رو مستقیم میبینن اصلا احتمال نمیدن که هزارمین واسطه باشه یه بار کرم میان نمیدونن کجا میگن خوابم میبینن اینها رو شما متعریف نکنید مرزون هم نذارید پیدا و تحریک خوابش های فحشاست که داشت حالا خواب برا خودش ها چیت داره ولی برای دیگری دیگر ها چیت نداره ولی یکی از راه کتاب و سنت باشه از راه مطارقش باشه میشه قطع موضوعی حالا این قطع موضوعی رو قبلا گفتیم اسمش چیه اصابه, اصابه دو دوتا معنام داشت یکی اینکه مصیب باشه به معنای که مطابقه باقاقه در بیاد مثل علم اهل بیت به واقع که مصیبه به معنی اوله و از اصابه به معنی دوم یعنی مطابقه با مرتکزات قلایی و برداشت اغلایی و صلاح اغلایی باشه موضوعی بشوند و این مطلب رو من قبلا یه مطلبی گفتم که مئیار ستخوکست چیه؟ مشهور میگن مطابقت به واقع ولی نه لقبیت عدم و لغویت. اینو میگن از کجا میگی؟ اینو من از مول متبل میگم های قدیمی صفحه 149 در اونجا داره که ملاک سلخ و کزب قد... در قضایات قد یک که این باشه لغویت و عدم لغویت البته به یه تعبیر دیگه مراجعه کنید و پیدا کردید برا منم بیارید ولی من دیدم یعنی پر روز نگاه کردم صفحه 149 او از اون متول خطی قدیمی که ملاک ست رو اینو نوشته. لذا رو نوشته نظام یقینه کتاب های کسی نخونه پیشرفت نمیکنه. میگن آبا علاقه تبا, تبا از کجا اومد مفصلی اینطوری شده این همه رموز رو از کجا فهمید به خدا این از متول فهمیده متول رموزی داره اسراری داره الان همین مبنای که علامه اتخاذ کرده بعید نیست از متقبل باشه داره نده خوب اساسش از اون کتاب و اینا ها متقبل رو خوب خوندن خوب تدریس میکردن الان هم اگه رو به این کتاب ها بیارید علمتون پایدار میشه یعنی اساس پیدا میکنه معلوم میشه به کجا بنده اصابه دو تا معناه یکی اینکه مطابقت با واقع، یکی مطابق با مبررات و صلاح و واقعیت های اغلائی. نه واقعیت‌های های نفس و امری فلسفی نه واقعیت‌های های اغلایی این هم میگن مصیب به معنای دوم منشه بحث قطع قطعه اصحابه به معنای اول منشه بحث تجربی بود حالا بعد از این مقدمه ما یک آیه از آیات اصول رو میخوانیم تحلیلش کنیم و اون آیه اینطوریه القطع المصیب هدشتون القطع المصیب هدشتون این آیه اصولی حالا تحلیلش کنیم برای چی تحلیل کنیم برای اینکه بفهمیم قطع و تحریف یا نه. اگر اینو تحلیل کردیم و به عمقش رسیدیم از نظر و معلوم میشه قطع قطه داره یا نداره من در ها نوشته بودم حتما آقایون خواندن که المصیب که در این تعبیر اومده آیا واسطه در ثبوت یا واسطه در اروزه اگر واسطه در ثبوت باشه قطع قطه حجت مطلبا اگر واسطه در اروز باشه قطع قطه نداره مطلبا بنابراین این تحلیلش رو اون پیگیری کنن حتماً هم پیش مطالعه این تمام بحث های قطعی قطعا حول محور این حساب است حسابه عقلایی برخلاف حسابه اهلی چون حساب دو قسمیه حسابه عقلی یعنی همان حسابه به واقع حسابه عقلایی این حساب یعنی مصیبت باشه با مناشع خودشون، با واقعیت های خودش با صلاح خودشون با صداد خودشون یعنی این میگه حسابه عقلایی در مقابل حسابه عقلیه و در تمام مباحث اصولی ما همیشه با های اوغداگی کار داریم نه عقلیه. اذا این رو در اون منتج دیگر علم اشمانی گفتیم که منتجیت عقلیه که مشهور میگن ثابت نیست، منتجیت اوغداگی ثابته. حالا اینا رو بیایید کنید تا فرداش آقا من هم در یکی مثلا گفتم اصلا نباید طرح بشه. نمیشه. حالا با این استعداد دارید استعداد شما خیلی بالا رازید اونو مطالعه کنید پیشگیدید پیش تا یه مبنایی که برای بعد از این مواقصه درتون مخوره برای خودتون قابل استحصال باشید چشمه در امروز و موضوعی ندارم و کاری شاخی و آره اسمش شخصی و میشه. که رو بذارم. من میخوام که نظرت که نظرت رضایی که نظرت که the <laughs> budget